به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ستایش برای خداوندی است که ها و زمین را آفرید و ها و نور را پدید آورد اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار میدهند. هو الذی خلقكم من طیل ثم قضی أجلا وأجل مسما عنده ثم أنتم تمترون او كسیست كه شما را از گل آفرید سپس مدتی مقرر داشت تا انسان تكامل یابد و عجل حتمی نزد اوست با این همه شما تردید میکنید کنید و هو الله في السماوات و فی الارض يعلم سرکم و و یعلم ما تکسبون اوست خداوند در آسمانها و در زمین پنهان و آشکار شما را میداند و از آنچه انجام میدهید و به دست می با خبر است وما ما من آیت من آیات ربهم إلا کانو عنها معرضین هیچ نشانه و آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمیآید مگر اینکه از آن روی گردان می فسوف يأتيهم انباء ما كانوا بهی یستهزئون آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکزید کردند ولی به زودی خبر آنچه را به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد.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 آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را حلاک کردیم؟ اقوامی که قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم. بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها نهرها را جاری ساختیم. اما هنگامی که سرکشی و تقیان کردند، آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ في فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ حَتَّى اگر ما نامهای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم و آن را با دستهای خود لمس کنند باز کافران میگویند این چیزی جز یک سهر آشکار نیست و قالوا لولا انزل علیه ملك ولو انزلنا ملک لقضی الامر ثم لا ينظرون از بحانه های آنها این بود که گفتند چرا فرشته بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند ولی اگر فرشته ای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می‌شود یعنی اگر مخالفت کنند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک می شود. وَلَوْ جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ و اگر او را فرشتهای ای قرار میدادیم، حتما وی را به صورت انسانی در می آوردیم باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند ولا قد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون با این حال نگران نباش جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزاء کردند اما سرانجام را مسخره میکردند، دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها فرود آمد قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان بگو روی زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد؟ قل لی ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لیجمعنکم الى يوم القیامت لا ریب فيه الذین خسرو انفسهم فهم لا يؤمنون بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آنه بگو از آن خداست، رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده و به همین دلیل به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد. آری، فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند، و له ما سکن فی اللیل و النهار و العليم و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و داناست قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو هو يطعم ولا يطعم قل انني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين بگو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است اوست که روزی می دهد و از کسی روزی نمی گیرد بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوند به من دستور داده که از مشرکان نباشم. بگو من نیز اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روزی بزرگ میترسم. من عنه فقد رحمه وذلك الفوز آنکس که در آن روز مجازات الهی به او نرسد خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است و اِن الله اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو رساند و بر همه چیز تواناست وهو و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه قل اي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئندكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من و مما بگو بالاترین گواهی گواهی کیست؟ و خودت پاسخ بده و بگو خداوند گواه میان من و شماست و بهترین دلیل آن این است که این قرآن بر من وحل شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد با آن بین دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم آیا به راستی شما گواهی میدهید که معبودان دیگری با خداست بگو من هرگز چنین گواهی نمیدهم بگو اوست تنها معبود یگانه و من از آنچه برای او شریک قرار می‌دهید بیزارم.الذین آتینهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون.آن‌ان که کتاب آسمانی به ایشان دادیم، به خوبی او را میشناسند. همان گونه که فرزندان خود را میشناسند فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند ایمان نمیآورند و من, من, من علی الله كذبا, كذباً می چه کسی ستم کارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته؟ یا آیات او را تکذیب کرده است مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا أین شرکاؤکم این شرکاؤکم الذین كنتم تزعمون ان که همه آنها را مشهور می کنیم سپس به مشرکان میگوییم معبودهایتان که همتای خدا می پنداشتید کجایند ثم لم تكن فتنتهم الا illا... ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که میگویند به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم كذبوا عنهم ما كانوا ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آنچرا به هم همتای خدا میپنداشتند، از دست میدهند. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ائذا ج اووك جونك يقول الذي كفرو يقول الذي كفرو هذا إلاسطير الأولن پاارره از آنها به سخننا تو گوش فرا میدهند ولی بر دل های آنان پردهها افکنده این تا آن را نفهمند.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 اینها فقط افثاله های پیشینیان است و هم ینهون عنه و ینهون عنه و این یهلیکون الا, الا انفسهم و ما یشعرون آنها دیگران را از آن باز می‌دارند و خود نیز از آن دوری می‌کنند. آنها جز خود را حلاک نمی‌کنند. ولينفهمند ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين كاش حال انهارا هنگامی که در برابر آتش دوزخ ایستاده‌اند ببینیم. میگویند ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردانده می‌شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از مؤمنان می‌بودیم بل بده لهم ما كانوا یخفون من قبل و ردوا لعادوا لیمانوه و عنه و آنها در واقع پشیمان نیستند بلکه اعمال و نیاتی را که قبلا پنهان میکردند، در برابر آنها آشکار شده و به وحشت افتاده و اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز میگردند. آنها دروغ گویانند و قالوا ان هي الا حیات دنیا و ما نحن بمبعوثین آنها گفتند چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد ولو الا ترى وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق بلا و قال العذاب بما كنتم تكفرون. اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند ببینی به آنها میگوید آیا این حق نیست میگویند چرا قسم به پروردگارمان حق است میگوید پس مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار می کردید قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتا قالو قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ما يزرون آنها هاك لغای پروردگار را تکذیب کردند مسلمند زیان دیدند و این تکذیب ادامه می یابد تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید میگویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم و آنها بار سنگین گناهانشان را بردوش دوش می‌کشند چه بدباری بردوش خواهند داشت ومال حیات دنیا الا لعب و خير للذين يتقون افلا تعقلون زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت برای آنها که پرهیزگارند بهتر است آیا نمی‌اندیشید قد نعلم إنه لا يحزنك الذي فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکریب نمیکنند بلکه ظالمان آیات خدا را انکار مینمایند وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى وَعُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ پیش از تونیز پیامبرانی شدند و در برابر تکذیب ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید تو نیز چنین باش و این یکی از سنتهای الهی است و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است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 فلا تكونن و اگر احراز آنها بر تو سنگین است چنان که به توانی نقبی در زمین بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری تا آیه و نشانه دیگری برای آنها بیاوری ولی بدان که این لجوجان ایمان نمی آورند، اما اگر خدا بخواهد آنها را به اجبار بر هدایت جمع خواهد کرد. پس هرگز از جاهلان مباشه الله تنها کسانی دعوت تو را میپذیرند که گوش شنوا دارند. اما مردگان و آنها که روح انسانی را از دست دادند ایمان نمی آبرند و خدا آنها را در قیامت برمیانگیزد. سپس به سوی او بازگردانده می‌شوند لولا نزل عليه آیت من قل ان الله قادر على ان نزل آيات ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون و گفتند چرا نشانه و معجزه‌ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی‌شود بگو خداوند قادر است که نشانه نازل کند ولی بیشتر آنها نمی‌دانند و ما من دابه فی ولا طائر یطیر بجناحیه الا, الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم هیچ در زمین و هیچ پرنده ای که با بال خود پرواز میکند نیست مگر اینکه که همانند شما هستند ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردن. والذين كذبوا باياتنا صم ومكمون في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقیم آنها که آیات ما را تکذیب کردند کرها و لالهایی هستند که در تاریکی ها قرار دارند هر کس را خدا بخواهد و مستحق باشد گمراه میکند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند بر راه راست قرار خواهد داد قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعة اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان کنتم صادقین بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز شود آیا برای حل مشکلات خود غیر خدا را می اگر راست می گویید؟ بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون ایلیه این شاء و ما تشركون. نه بلکه تنها او را می و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خانده اید برطرف می سازد و آنچرا امروز همتای خدا قرار می دهید در آن روز فراموش خواهید کرد و لقد ارسلنا الى امم من قبل کفاخذناهم فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و هنگامی که با این پیامبران به مخالفت برخواستند آنها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم شاید بیدار شوند و در برابر حق خضوع کنند و تسلیم گردند فلولا اذا جاءهم باسناتضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضوع نکردند و تسلیم نشدند بلکه دلهای آنها قصاوت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که میکردند در نظرشان زینت داد فلما نسوما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیئین حتی حتی اذا فرحو بماؤتو اخذناهم بغتت اخذناهم بغتتا فا اذا هم مبلسون آری هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آنچرا به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند درهای همه چیز از نعمتها را به روی آنها گشودیم تا کاملا خوشحال شدند و دل به آن بستند ناگهان آنها را گرفتیم و سخت مجازات کردیم در این هنگام همگی معیوس شدند و درهای امید به روی آنها بسته شد فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین و به این ترتیب دنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستاگش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است قل ارائیتم إن أخذ الله سمعكم و ابصارکم و ختم علا قلوبکم و ختم على قلوبكم من اله غیر الله یأتیکم به انذر کیف نصرف ثم هم بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد که چیزی را نفهمید چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد ببین چگونه آیات را بگونه های مختلف برای آنها شرح دهیم، سپس آنها روی می‌گردانند قل ارأيتكم این عذاب الله او هل يهلكوا إلا القوم الظالمون بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید آیا جز جمعیت ستمکار حلال میشوند؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما پیامبران را جز عنوان بشارت دهنده و پیم دهنده نمیفرستیم. آنها که ایمان بیاورند. و خیشتن را اصلاح کنند نه ترسی بر برانهاست و نه قمگین می شوند و الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا و آنها که آیات ما را تکذیب کردند عذاب پروردگار به خاطر نافرمانی ها به آنان می رسد.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 بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و من جز آنچه خدا به من بیاموزد از غیب آگاه نیستم و به شما نمیگویم من فرشته ام تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی میکنم بگو آیا نابینا و بینا مساوی پس چرا نمی اندیشی وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون و به وبوسیله آن قرآن کسانی را که از روز حشر رساخیز میترسند بینده روزی که در آن یا و سرپرست و شفاعت کننده ای جز او ندارند شاید پرهیزگاری پیشه کنند ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم و کسانی را که صبح و شام خدا را می و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها که اگر آنها را ترد کنی از ستم گردی وكذلك کذالک فتن بعضهم ببعض ليقولوا لیاقولو آه اولای من الله عليهم من بيننا آليس الله باعلم بالشاكرين و این بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمیشناسد؟ و اذا جاک الذین یؤمنون بی فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسی رحمه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 رحمت را بر خود فرض کرده هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح نماید مشمول رحمت خدا می شود چرا که او آمر زنده مهربان است و این چونین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد قل إن نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع قد ضللت اذا و ما من المهتدین بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی ام بگو من از هوا و های شما پیروی نمیکنم. اگر چنین کنم گمراه شدهام و از هدایت یافتگان نخواهم بود قل اننی علی بینه من ربی وکذبتون به ما عندی ما تستعجلون به این الحكم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست حکم و فرمان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 و به درخواست شما ترتیب اثر می دادم عذاب الهی بر شما نازل می گشت و کار میان من و شما پایان گرفته بود ولی خداوند ظالمان را بهتر می و به موقع مجازات می کند و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كليدهاي غيب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند او آنچه را در خشکی و دریاست داند هیچ برگی از درختی نمیافتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتابی آشکار در کتاب علم خدا ثبت است. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به ثم يبعثكم, ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون شمارا در شب به هنگام خواب میگیرد و از آنچه در روز کرده اید با خبر است. سپس در روز شما را از خواب برمیانگیزد و این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا سرآمد معینی فرار سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می‌کردید با خبر می سازد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفضه حتى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما میگمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرار در این موقع فرستادگان ما جان او را میگیرند و آنها در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی کنند ثم ردو ایلالله مولاهم الحق الاله الحکم و اسرع الحاسبین سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز میگردند. بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او سریع ترین حسابگران است قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونم تضرعا و لئن لئین لئن من من بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی می بخشد در حالی که او را با حالت تزرع و آشکارا و در پنهانی می خانید و می گویید اگر از این خطرات و ظلمتها ها ما را رهایی بخشد از شوق گذاران خواهیم بود. الله منها من كل كرب ثم بگو خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات می دهد. باز هم شما برای او شریک قرار می دهید و راه کفر می پوئید. قل هو القادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرضكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيع و يذق كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد یا به صورت دسته پراکنده شما را با هم بیا و تعم جنگ و اختلاف را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند ببین چگونه آیات گوناگون را برای آنها بازگو می کنیم؟ شاید بفهمند و بازگردند وكذب بي قومك وهو الحق قل است عليكم بوكيل قوم و جمعیت تو آن آیات الهی را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است به آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان لیکل نبعیم مستقر و تعلمون هر خبری که خداوند به شما داده سرانجام قرارگاهی دارد و در موعد خود انجام میگیرد و به زودی خواهی دارست و اذا رأیت الذین یخوبون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین و ما علی الذین من حسابهم من شيء و ولكن ذکرا یتقون و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند وذر الذین اتخذو دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا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 لهم شراب من حمیم و عذاب و عذاب علیم بما کانو و رها کن کسانی را که آین فطری خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را مقرور ساخته و با این قرآن به آنها یادآوری نما تا گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند و در قیامت جز خدا یاوری دارند و نه کننده ای و چونین کسی هر گونه عوضی به از او پذیرفته نخواهد شد آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که خود انجام داده اند نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست و از آب دردناکی به خاطر این که کفر میبردیدند و آیات الهی را انکار میکردند قل ندعو من دون الله ما لا ينفعونا ولا يضرونا و نرد على اعقابنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدان الله كالذي استهوته, الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى و امرنا لرب بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم و عبادت کنیم که نسودی به حال ما دارد نزدیانی و به این ترتیب به عقب برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرده است همانند کسی که بر اثر های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده است در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم وأن اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ونیز به ما فرمان داده شده به اینکه نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول لكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وسط آسمانها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش موجود می شود سخن او حق است و در آن روز که در سور دمیده می شود حکومت مخصوص اوست از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم و آگاه و اذ قال ابراهیم لابهیه ازره اتتخذ اصناما الها اینی اراک و قومک فی ضلال مبین به خاطر بیاورید هنگامی را که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا بودهایی را معبودان خود انتخاب می من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می وكذلك نورى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلق خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَ كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره ای مشاهده کرد گفت این خدای من است؟ اما هنگامی که قروب کرد گفت غروب كنندگان را دوست ندارم فلما را القمر ذاغ قال هذا ربي فلما افل قال الا ان يهدني ربي لا اكونن لا اكونن من القوم الضالين وهنگامی که ماه را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است اما هنگامی که آن هم غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه راهنمایی نکند مسلما از گروه گمراهان خواهم بود فلما رأ الشمس بازغه قال هذا, ربی هذا اتبر فَرَمَا اَفْلَت قَال يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا إِنِّي بَرِيءٌ و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکاف گفت این خدای من است اینکه از همه بزرگتر است اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم من از شریک هایی که شما برای خدا میسازید بیزارم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم و قومه قال في الله وقد ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ولي قوم او باوي گفتگو و ستیز پرداختند گفت آیا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می‌کنید در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آنکه شما همتای خدا قرار می‌دهید نمی‌ترسم و به من زیانی نمی‌رسانند مگر پروردگارم چیزی را بخواهد وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در بر می‌گیرد آیا متذكر و, و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون ان لكم بالله ما لم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالأمن ان كنتم تعلمون چگونه من از بطهای شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی در باره آن بر شما نازل نکرده است راست بگویید کدام یک از این دو دسته بود پرستان و خداپرستان شایسته تر به ایمنی از مجازات هستند اگر می دانید. الَّذِينَ آمَنُوا ولم يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بظلم اُولَائِكَ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آری، آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند ایمانی تنها ازان آنهاست و آنها هدایت یافتگانند وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هرکس را بخواهیم و شایسته بدانیم بالا می‌بریم هر وردگاری تو حکیم و داناست. و وهبنا له اسحاق و يعقوب كلن هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داود و سليمان و وموسى و وكذلك و موسى و هارون و المحسنين. و اسحاق و به او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 و زکریا و یحیا و عیساه و من الصالحين. و همچنین زکریا و یحیا و عیساه و الیاس را همه از صالحان بودند. و اسماعیل و الیاس و یونس و, و فضل على العالمين. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه را بر جهانیان برتری دادیم و من ابائهم و ذریاتیم و اخوانیم و جد و جد بین الی صراط مستقیم و از پدران و فرزندان و برادران آنها افرادی را برتری دادیم و برگزدیم و به راه راست هدایت نمودیم ذ کهود الله هدی این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راه نمایی میکند و اگر آنها مشرک شوند اعمال نیکی که انجام دادهاند نابود می و نتیجه از آن نمی گیرند اولائی الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فا این بها هؤلاء فقد وكل بها فَقَدْ وَكَّلَّا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بكافرين. آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند آین حق زمین نمی ماند زیرا کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن کافر نیستند اولا ان الذين هدا الله فبهداهم اقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا انه والا ذكر للعالمين آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت و تبلیغ پاداشی از شما نمی طلبن. این رسالت چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست این وظیفه من است و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا اذ قالو ما انزل الله علی بشر من شيء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 قل الله في خوضهم يلعبون. آنها خدا را درست نشناختند که گفتند خدا هیچ چیز بر هیچ انسانی نفرستاده است بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد کتابی که برای مردم نور و هدایت بود اما شما آن را به صورت پراکنده قرار می دهید قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می‌دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن باخبر نبودید بگو خدا سپس آنها را در گفتگوهای لجاجتامیزشان رها کن تا بازی کنند وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر, ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون و این كتابي که ما آن نازل کردیم. کتابیست است پربرکت که آنچه را پیش از آن آمده تصدیق میکند آن را فرستادیم تا مردم را به پاداشهای الهی بشارت دهی و تا اهل ام القرا مکه و کسانی را که گرد آن هستند بترسانی یقین بدان آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان میآورند و بر خیش مراقبت می الله کذبا او قال اوحیه الی ولم یوحه الیه شیع و قال, و قال سأنزل مثل ما انزل الله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 اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگویند من نیز همانند آن که خدا نازل کرده است نازل میکنم و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفئند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید به حال آنها تأسف خواهی خورد ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرته وترکتم وتركتم ما خولالکم وراء اظهورکم و ما نرا معكم شفاع اقم زعمتم أن لهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون و روز قیامت به آنها گفته می شود همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می با شما نمی بینیم پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصور می کردید از شما دور و گم شده ان. إن الله سالق الحب والنوى یخرج الحی من الميت ومخرج المیت من الحی ذلكم الله فأنا تؤفكون خداوند شكافندهٔ دانهوو هسته است زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده بیرون میآورد این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ فالق الاصباح و جعل اللیل سکن و الشمس و القمر حسبانا ذلك العزیز العليم. او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشیدو و ماه را وسیله حساب قرار داده است این امدازگیری خداوند توانای دانست. و هو اللذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون او کسیست که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید ما نشانه های خود را برای کسانی که می دانند و اهل فکر و اندیشه اند بیان داشتیم و هو الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَتٍ فَمُسْتَقَرُ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قد لقوم او است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند تشریح نمودیم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 ومن النخل من طلعة قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون ورمال مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعيه این فی ذالکم لآیات که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه های با رشتههای باریک بیرون فرستادیم و باخهایی از انواع انگور و زیتون و انار گاه شبیه به یکدیگر و گاه بیش باحت هنگامی که میوه میدهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه‌هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است و برای خدا به دروغ و از روی جهل پسران و دخترانی ساختند. منزه هست خدا و برتر است از آنچه توصیف می کنند. بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه و خلق كل و وهو بكل شيء علیم او پدید آورنده آسمان ها و زمین است چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد حالان که همسری نداشته و همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شیئن فعبدوه و هو علا قل شیئ وکیل این است خداوند پروردگار شما هیچ معبودی جز او نیست آفریدگار همه چیز است او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير چشم‌ها او را نمی‌بینند ولی او همه چشم‌ها را می‌بیند و او بخشنده و آگاه از همه چیز است قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصرف لنفسی ومن عمیف علیها و ما انعليكم بحفیظ دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم و این چونین آیات خود را تشریح میکنیم. بگذار آنها بگویند تو درس خونده ای و آنها را از دیگری آموخته ای میخواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند روشن سازیم اتبع ما وحی الیک مروابی که لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان ولو شاء الله ما وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوکیل اگر خدا میخواست همه به اجبار ایمان می آوردند و هیچ یک مشرک نمی شدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی وَلَا تسب الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم كذلك زینا لكل امة عملهم ثم الی ربهم وارجعهم فینبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون به معبود که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند این چونین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می‌سازد و پاداش و کیفر می و لئن جاءتهم بها قل انما ال عند الله وما جاءت لا يؤمنون. با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه برای آنان بیاید حتما به آن ایمان میآورند آورند بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه ای و شما از کجا میدانید که هرگاه معجزه ای بیاید ایمان می خیر ایمان نمی آبرند و نقلب افعیدتهم و ابصارهم كما لم به اول مرد و و نذرهم فی طغيانهم یعمهون و ما دلها و چشمهای آنها را واجگونه می سازیم آری آنها ایمان نمی آورند همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال طبیان و سرکشی به خود وامی تا سرگردان شوند ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن میگفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم هرگز ایمان نمی آوردند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمیدانند. وكذلك جعل الله لكل نبي عدو شياطين الإنس والجني يوحى يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروه وما يفترون إن شو در برابر هر حيام دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم آنها به طور سری و در گوشی سخنان فریبنده و بی اساس برای اخفال مردم به یکدیگر میگفتند و اگر پروردگارت میخواست چنین نمیکردند بنابراین آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگزارد وليتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون نتیجه این خواهد شد که دلهای منکران قیامت به آنها متمایل گردد و به آن راضی شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند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 داوری در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن آمده به سوی شما فرستاده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم میدانند این کتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده بنابراین از تردید کنندگان و تمت کلمت ربی که صدقا و عدلا لا مبدل کلماتهی و هو السمیع العليم و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید هیچ کس نمی کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می‌کنند زیرا آنها تنها از گمان پیروی می‌نماگند و تخمين و حدس واهی میزنند این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشتند آگاه تر است و همچنین به کسانی که هدایت یافتند از گوشت آن که نام خدا هنگام سربریدن بر آن گفته شده بخورید و از غیر آن نخورید اگر به آیات او ایمان دارید.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 اندر ربک هو اعلم چرا از چیزهایی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید در حالی که خداوند آن را بر شما حرام بوده بیان کرده است مگر اینکه ناچار باشید و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی یک یکدیگر را گمراه می سازند و پروردگارت تجاوز کاران را بهتر میشناسد. ودروا اثمی و, ظاهر و باطنه، این يكسبون بما كانوا يقترفون. گناهان آشکار و پنهان را رها کنید. زیرا، کسانی که گناه می کنند به زودی در برابر آنچه مرتکب می شدند مجازات خواهند شد. ولا لَمْ مما لم يذكر اسم الله عليه وَإِنَّ لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى وَإِنْ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون واز آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد که این کار گناه است و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه می کنند تا با شما به مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود او من کان و جعلنا له نورا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثلومو فی الظلمات ليس بخارج منها کذالک زین للكافرین ما کانو یعملون آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود؟ همانند کسی است که در ظلمتها ها باشند و از آن خارج نگردد این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام میدادند تزئین شده و زیبا جلوه کرده است و كذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما و نیز این گونه در هر شهر و آبادی بزرگان گنهکاری قرار دادیم افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند ولی تنها خودشان را فریب میدهند.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 و عذاب شدید بی ما کنو و هنگامی که آیه ای برای آنها بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر این که همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود خداوند آگاه تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند و مردم را از راه حق منحرف ساختند در مقابل مکر و فریب و نیرنگی که میکردند گرفتار هقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد فمن یرد الله این یهدیه یشرح صدره وما يريد أي يضله يجعل صد مضيق حرا جك عندما ك ما ي الصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذي لا يؤمنون آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سین را برای پذیرش اسلام گشاده میسازد و آن کس را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنج می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد صراط و این راه مستقیم و سنت جاویدان پروردگار توست ما آیات خود را برای کسانی که پند میگیرند بیان کردیم لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانو یعملون برای آنها در بهشت خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و یاور آنهاست به خاطر اعمال نیکی که انجام میدادند.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 قال النار ما شاء الله ان ربك در آن روز که خدا همه آنها را جمع و مشور میسازد میگوید ای جمعیت شیاطین و جن شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می‌گویند پروردگارا هر یک از ما دو گروه پیشوایان و پیروان گمراه از دیگری استفاده کردیم ما به لذات حوثالود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم خداوند میگوید آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد پروردگار تو حکیم و داناست و كذلك بعض بعضا ما, كانوا ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعض دیگر وا به سبب اعمالی که انجام می دادند. يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أن و غروتهم الحیات الدنیا و شهدوا علا انفسهم انهم کانو کافرین در آن روز به آنها میگویند ای گروه جن و اینس آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند؟ که آیات مرا برایتان بازگو می کردند و شما را از ملاقات چنین روزی بین می دادند. آنها می گویند بر ضد خودمان گواهی می دهیم آری ما بد کردیم و زندگی پرزرق و برق دنیا آنها را فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند ذک ال یاقرابون این آن است که پروردگارت هیچگاه مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستتمهایشان در حالت قفلت و بیخبری حلاک نمی کند بلکه قبلا رسولانی برای آنها میفرستند. ولكل دَرَجَاتٌ مما مَا وما ربك رَبُّكَ عما عَمَّا و برای هر یک از این دو دسته درجات و مراتبیست از آنچه عمل کردند و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند آفل نیست وَرَبُّكَ ذو الرحمه این یشأ يذهبكم و من بعدكم ما يشاؤ كما کما انشأكم من ذریت قوم آخرین پروردگارت بینیاز و مهربان است پس به کسی ستم نمی کند بلکه همه نتیجه اعمال خود را می گیرن. اگر بخواهد همه شما را می‌برد، سپس هر کس را بخواهد جانشین شما می سازد همانطور که شما را از نسل اقوام دیگری به وجود آورد اینما توعدون آنچه آن به شما وعده داده می شود یقینا می و شما نمیتوانید خدا را ناتوان سازید. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار ان انه لا يفلح الظالمون بگو اي قوم من هر کار در قدرت دارید بکنید من هم به وظیفه خود عمل می کنم، اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت و پیروزی با چه کسی است؟ اما به یقین ظالمان رستگار نخواهند شد. وجعلوا لله مِمَّا ذَرَأَ مِنَ من وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا صيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ما آنها مشرکان سهمی از آنکه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده برای او قرار دادند و به گمان خود گفتند این مال خداست و این هم مال شرکای ما یعنی بودهاست آنکه مال شرکای آنها بود به خدا نمی ولی آنکه مال خدا بود به شرکایشان می رفید. چه بد حک می کنند و کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم ليردوهم لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما يفترون همینگونه شرکای آنها، بوتها، قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند. سرانجام آنها را به حلاکت افکندند و آینشان را بر آنان مشتبه ساختند. و اگر خدا میخواست چنین نمیکردند زیرا میتوانست جلو آنان را بگیرد ولی اجبار سودی ندارد. بنابراین، آنها و توهمتهایشان را به حال خود واگذار و به آنها اعتناب مکن وقالوا هذه انعام و حرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم و و حرمت ظهورها و لا يذکرون اسم الله علیه افتراءا علیه سيجزيهم بما كانوا یفترون و گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص بودهاست برای همه ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم به گمان آنها نباید از آن بخورند و اینها چهار پایانیست که سوار شدند بر آنها بر ما حرام شده است و نیز چهار پایانی بود که هنگام زب نام خدا را بر آن نمی بردند و به خدا دروغ می و می گفتند این احکام همه از ناحیه اوست به زودی خدا کیفر افتراهای آنها را می دهند. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. با کوفند آنچه از بچه در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است اما اگر مرده باشد همگی در آن شریکند به زودی خدا کیفر این توصیف و احکام دروغین آنها را می‌دهد. او حکیم و داناست قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم و حرمو ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلو و كانوا کانو مهتدین به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند گرفتار خسران شدند زیرا آنکه را خدا به آنها روزی داده بود بر خود تحریم کردند و بر خدا افترا بستند آنها گمراه شدند و هرگز هدایت نیافته بودند وهو الذي أنشأ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والزيتون وهمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 که از جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند از میغه آن به هنگامی که به سمر می‌نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اصراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست ندارد و الانعام قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا انه لكم مبين. او كسی است كه از چهارپایان برای شما حیوانات باربر و حیوانات کوچک برای منافع دیگر آفرید از آنچه به شما روزی داده است بخورید و از گام های شیطان پیروی ننمایید که او دشمن آشکار شماست. ثمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل آذك رعين حر و من اشتملت اما اشتملت علیه ارحام الانفیعین نبیعونی بعلم این کنتم صادقین تا از چهار پایان برای شما آفرید از میش یک جفت و از بز یک جفت بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را؟ یا آنچه شکم ماده ها در برگرفته اگر راست میگویید و بر تحریم اینها دلیلی دارید به من خبر دهید و من الابل اثنین و من البقر اثنین قل اذ ذکرین حروم امیل ام مشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنفة يين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من بل افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعصة <تصفيق> شطور و از گاب هم یک جفت برای شما آفرید بگو کدام یک از اینها را خدا حرام کرده است نرها یا ماده ها را یا آنچه را شکم ماده ها در برگرفته یا هنگامی که خدا شما را به این موضوع توصیه کرد شما گواه بر این تحریم بودید پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد تا مردم را از روی جهل گمراه سازد خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمیكند قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أي الا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزیر او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اوهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم بگو در آن بر من وحی شده هیچ قضای حرامی نمیابن به جز اینکه مردار باشد یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک یا حیوانی که به گناه هنگام سر سربریدن نام غیر خدا بر آن برده شده است. اما کسی که مزتر شود بیان آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاد روی کند گناهی بر او نیست زیرا پروردگارت آمرزنده مهربان است وعلى الذين هادوا حر ومنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حر ومن عليهم شحومهما إلا ما حملت مَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم و بر یهودیان هر حیوان ناخوندار حیواناتی که سم یک پارچه دارند را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پی و چربیشان را بر آنها تحریم نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد و یا در دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخان آمیخته است این را به خاطر ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و ما راست می گوییم فا این کذبو ربکم ذو رحمت واسعه فَقُرْوَبُكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَتٍ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اگر تو را تکثیب کنند و این حقایق را نپذیرند به آنها بگو پروردگار شما رحمت گسترده ای دارد اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی نیست و اگر ادامه دهید سیارشما حتیست. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون به زودی مشرکان برای تبرعه خیش میگویند اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین گونه دروغ می و سرانجام تعمه کیفر ما را چشیدند بگو آیا دلیل روشنی بر این موضوع دارید که آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیدوی می کنید و تخمینهای نابجا میزنید زنید فلو شاء لهداكم بگو دلیل رساب قاطع برای خداست دلیلی که برای هیچ کس ای باقی نمیگذارد و اگر او بخواهد همه شما را به اجبار هدایت میکند ولی چون هدایت اجباری بی سمر است این کار را نمی کند قل هلما شهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تتبع كَذَّبُوا الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاقره وهم وهم بربهم يعدلون بگو گواهان خود را که گواهی می دهند خداوند اینها را حرام کرده است بیاورید اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان هم صدا نشو و گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند پجوی مکن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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید ما شما و آنها را روزی میدهیم و نزدیک کارهای زشت نروید چه آشکار باشد چه پنهان و انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق و از روی استحقاق این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده شاید درک کنی. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفو ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون و به مال یتیم جز به بهترین صورت و برای اصلاح نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت نمایید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کندند تا متذکر شوید. ان صراطی ولا این راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده و انحرافی پیروی نکنید که شما را، از طریق حق دور میسازد این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش میکند شاید پرهیزگاری پیشه کنید ثم اتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى و هدن و رحمتن لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم و نعمت خود را بر آنها که نیکو کار بودند کامل کردیم و همه چیز را که مورد نیاز آنها بود در آن روشن ساختیم کتابی که مایه هدایت و رحمت بود شاید به لقای پروردگارشان و روز رستاخیز ایمان بیاورند و, و, و این كتابی است پر بركت كه ما بر تو نازل کردیم از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیش نمایید باشد که مورد رحمت خدا قرارگیرید. آن تقول: اینما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وانكنا وانكنا عند راستهم لا ما این کتاب را با این امتیازات نازل کردیم تا نگویید. کتاب آسمانی تنها بر دو تایفه پیش از ما یهود و نصارا نازل شده بود و ما از بحث و بررسی آنها بیخبر بودیم او تقولوا لو اننا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم فقد جاءكم کن من ربكم وهدى فمن أظلم ممن من كذب بآيات الله و عنها سنجز الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصطفون يا نگویید اگر كتاب آسمانی بر ما نازل میشد از آنها هدایت یافت بودیم اینک آيات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمت برای شما آمد پس چه کسی ستمکار است از کسی که آیات خدا را تکذیب کرده و از آن روی گردنده است اما به زودی کسانی را که از آیات ما روی می به خاطر همین اعراض بی دلیلشان مجازات شدید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 لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظرو انا منتظرون آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان آیند یا خداوند به سوی آنها بیاید یا بعضی از آیات پروردگارد و نشانه های رستاخیز بیاید؟ اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند، سودی به حالشان نخواهد داشت بگو اکنون که شما چون این انتظارات نادرستی دارید انتظار بکشید ما هم انتظار کیفر شما را میکشیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون کسانی <تصفيق> که آیین پر پراکند ساختند و به دسته دسته‌های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری سر و کار آنها تنها با خداست سپس خدا آنها را از آنچه انجام می‌دادند باخبر می‌کند من جاء حسنه فله و عشر امفالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها و هم لا يظلمون. هر کس کار نیکی به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد قل انني غداني رب الى صراط مستقيم ديننا دين قومه ابراهيم حنيف وما كان من المشركين بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت كردي آيني پابرجا و ضامن سعادت دين و دنيا آین ابراهیم که از آینهای خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود. بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين همتائی برای او نیست و به همین مأمور شده و من نخستین مسلمانم قل اغير الله ابغيرا رب وهو رب كل شيء ولا تفسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم ترجعون فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بگو آیا غیر خدا پروردگاری را به طلبن در حالی که او پروردگار همه چیز است هیچ کس عمل بدی جز به زیان خودش انجام نمی دهد و هیچ گناه کاری، گناه دیگری را متحمل نمی شود. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد و و رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاكم این ربک سریع العقاب و لغفور رحیم و او کسیست که شما را جان و نمایندگان خود در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید به یقین پروردگار تو سریع و آمرزنده مهربان است